است در سادر نیست وقتی که بر خانوات پیغمبر آمد که حجاب کنی برای همه حجاب آمده ما کسی کنیز واقعی باشه اگر کنیز و باره واقعی بود برای اون حجاب پوشان صورت نیست به انسان آزاده با صورتها رو بپوشونم این که بعضی میگن حجاب بیرو کردن چه بس گرد صورت‌ها در این مورد اصلا حدیث ما مداری که صورت پوشانندگی اشتباه داره میگه این که بشه همین میگن حجاب اون بقیه بدن میگن औरत این حادیثی که آیات حجاب ناظر شدن به کشانیدن سورت و دستها و موهای اینها آمده داخل ادنماجه حدیث داریم که حضرت آیستر از جلال میخواد وقت میرفتیم حاجی ما زیگه ویرون بیرون بودن نامحرمی که میرسید پایل می پایل میکردیم می کردیم و داخل سی بخاری کتاب المغازی قضوه بنو مصطلق اونجا مرئسی یا بنو مصطلق مصلی ایش وقتی آمد می‌فرمازد تعالی عز و جل طالانه وقتی که برخوابیده بودم اونجا دیگه همون شخص پوشت دی که از پشت اومد سفانده موطل وقتی من دید که ان لله و ان راجعون دیگه با گفتن ایمان می‌داد صدا فخمر تو وجی فرت رو پوشانیدم چون محرم من نبود دیگه که قد عرفنی من شناخت چرا چون که من دیده بوده قبل از اینکه حجاب نازل بشه می قبل حجاب نازل, نازل من فقط اینا حجاب پوشانند صورت میگویند حالا همین قرن جنبي زمان هست بیشتر بیرون نکنید